اشتريت خریدم اکملی کامل کن ادامه بده البسی بپوش قالت امرأتون لزوجها البخیل حلمت البارح انک اشتريت لی ملابس جدیده قال لها اللیل اکملی الحلم والبسيها. زنی به همسر خصیصش گفت دیشب خواب دیدم برام لباس نو خریدی. مرد گفت امشب خوابت رو ادامه بده و همونها رو بپوش.